بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و اليه وصحبه اجمعين اما بعد اخرين درس ما بحث حديث موضوع بود و ان كي اين حديث موضوع از كي شروع شد و چه موقع دروگان به خودش جرأت دادن که بر الله صلى الله عليه وسلم دروغ ببندن گفتيم وقت آغاز دروغ بعد از آمدن مختار سققی در اواخر نیمه دوم دو قرن اول خب این خلاصه خلاصیه را آخرین درست که ما داشتیم درس امروزمون بحث مرسل بحث مرسل حالا یک از دستان حبت بی و از متن امام زهبی می کنند شاید اول مؤلف راحمه الله المرسل علم علم علما ثقته لفظ الحديث المرسل فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل این خلاصه‌ی تعریفه حدیث مرسل تابعی بگوید الله صلى الله عليه وسلم فرمود تابعی تابعی کسی که با صحابه ملاقات کرده الان بزرگش، کچی کش، فرقی نداره. هر شخصی با صحابه رسول الله صل الله علیه و سلم مناقض بکنه که چی بگهش میگن؟ تابع. الان این شخصی که با اصحاب رسول الله صلی علیه و سلم مناقض کرده. واسطهش و بین, بین خودش و بین رسول الله صلی علیه و سلم رکنه. بگه که رسول الله صلی علیه و سلم فرموده. این به چی میگن؟ به چی میگن مرتب؟ چرا این مرسل ضد مثل صحیح نشد؟ سرچه کلا بعضی خونامه مثل امام ابو حنیفه میگه که مرسل قویتر از حدیث متذر چرا؟ میگه چون عالم سقه یک شخص مدقن تعهود اثناد را به خودش گرفته و گفته یقینم که رسول الله چین فعی این عالم اگر تخت داره اگر ورع داره و بیاد دیگه رسولا گفته پس حتما گفته رسول الله صل الله حضی و صلی دیگه نیازی نیست که ما میریم دوباله اون را میگهدیم کسی شنیدیم که نشیده آیا این وجه درستی خیر درست نیست چرا؟ چون ما داریم در بین روماند کسانی که در نزد یک امام سرقه هست دیگه در نزد و لمای دی دیگر ضعیفه و سحیر هم اینه که ضعیفه مثل برطرد امام شافیه میگه حدده تقی دین گفته این شخص کیه محمد ابن ابراهیم جمهور ائمه محزنین با تذییب میشن و جرحی هم که دربارش کردن جرح موفره حالا نه امام شرفی باشه نه سید نوثی باشه هر کی باشه نگاز کشینیده نش... کش نگاز کشینیده ما نمیتونیم ازش قبول بکنیم شاید در نظر خود شخص درستی باشه لیکن در نظر دیگران شاید دیه شاید دیگران, شا دیگران, شا دیگران چیزی دیدن که این شخص ندیده شاید دیگران چیزهای دیگه رو ببینیده باشن اشتباعی ازش دیده باشن که کسان دیگه نکه بخاطر های ما نمیتونیم بپردیرین بدون اینکه یک شخص ذکر بشه بدون اینکه اون شخصی که ناقله ذکر بشه نمیتونیم اون شخص بپردیر خب الان این تابعی چرا جزم احادیث ضعیفه؟ بخاطر اینکه چون احتمال داره این حدیثی که نقص پرده از صحابی و یا از طابعی دیگر باشه، صحابه که همه عدودند. لیگه چون احتمال داره غیر از صحابه از طابعی هم نهر بکنه، به خاطر همین ما نمیتونیم ازش قبل بکنیم. و اون طابعی هم احتمال داره چه از دخواه باشه، چه از باشه. به خاطر همین احتمال زعفش، ما نمیتونیم ازش بسیدیم. در تاریخ حدیث مرسل ستا قوله قوله صحیح همین که الان داشتیم و اونم رسول الله صلی الله عليه و وسلم فرمودن الله چه بزرگ بشه چه بشه قوله دوم این که تابعه بزرگ به رسول صل الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند این گفته ام شافعیه ولی صحیح همونطور گفتین، گفتی اوله بعده گفتن که تابع تابعی هم به رسول الله گفته غیر تابعی اونم بازم مرسله اینم بازم گفته مردودیه چون این بر خلاف عمل محدثینه جمهور محدثین بر اینم که اگر تابعی چیکوچیک و بزرگ چیکو باشه به رسول الله عجیل فرمودن اون گفته اون حدیث مرسله در تعلیف مرسل چینین آمده شروط مرسل میگن که مرسل اینه که تابعه بیاد بگه رسول الله صلی اللہ علیه و صلی اللہ و اون حرف از رسول الله صلی باشه و نه هم فعل رسول الله را دیده و نه هم چیز رسول الله صلی اللہ شنیده و باید شاید به خود فکر میکنید تحجب اینجا خب تابعی مسلمه دیگه با رسولان رسولان که ندیده مشاهده نکرده درسته؟ خب دیگه چه لازمه که با بگه فعلش رو ندیده باشه تا بعد اگه بفتش رو تابعی یعنی کسی که با صحابه مناخات کرده چرا علما این قیود گذاشتن این قید ها رو گذاشتن این بنده ها رو گذاشتن با خاطر اینکه یک شخصی از اصحابه یک شخصی از از اشخاصی که در اون زمانه بوده بر رسولان ملاقات کرده دی که مسلمان نشده بعد از رفات رسول الله صلی اللہ علیه وسلم مسلمان بشه این شخص صحابیه صحابی نیست ما گفتیم در تعریف صحابی کسی که بر رسولان در حال ایمانش باش ملاقات کرده باشه لیکن این در حال ایمان ملاقات نکرده خب حالا بیاد این شخص از اون چیزی که مشاهده کردیم بگه مثلا من در محسیدین که رسولات چینی فعلی انجام داده یا انجام میداد داد آیا قبوله قبوله آیا جز مرسل یا جز متسل جز مرسل حالا حتین که ما مرسل دونو داریم مرسل لکفی مرسل جلی داریم که انشاء الله در جاش فاحد اومد خب دنبالش ویدعو فلی اللہ رسیلی این خمسه تو فمستحف فمستحف فأن الصحاف المرسل منصرف عبد المسيد والمسل المسلو ما تلوك والمسلو كنا به والمسلو خيثلنا بحاضن ونحو ذلك فإن المسل إذا صحا إلى صابعين كبير فهو حدة من عند خلص من الصحافة ويقع في المرسل الأنواع الخمسة الماضية مرسل شكمة تنجدونية شكم قبل صحيح حسان زعیب مطروح و موضوع حکم پنجگانه قبل اما نشید مبحث مرتدارده حکم یکی از پنج مبحث قبل به خودش میگیره یا حدید یا مرتد صحیحه یا حسنه و یا مطروحه و یا موضوعه لیکه در بحث این که حکم صحیحه به خودش میگیره مشکل هیچ وقت حديث حكم بخدش أنه مرسل حكمه صحيح بخدش النبي بده يغيره ونفاخذ كيف بده بتبسط الشرع المرسل لم بده صحيح ليش صحيح الغيرينه فهي لذاتي ترى مرسل لم يكون الان سبق ان قويه قاعده المراثي انواع الخمس الماضيه يجي مشيكه مرسل يكي احكام فنجاني يقبلي بخدش بيجيره وتاجي يجي فاجين المرسل اذا صح الى طبيعه الى صحه صح قبل نفهمنا نفهم صحاح المراثي از جمله مراتب صحیح و چه بگم مرسله ل صحیحه لکی مرسل مقدم مص... مثل منقطع لکی انقطاع چونه در رتبه ولات به خاطر همین چی گفته میشه مرسال بحث یک شخص یکجا شده و یکجا از اسناد یک راوی افتاده لکی چه در نتیجه قرار گیره تابعی میگه میفرماید ترهوین درجه اش و رتبه از ضعیف تنها بالاتر است یعنی به حدیث صحیح را ذکر خب الان سوال من چیزی که من مطرح کردم چرا نمیشه یک مرسل صحیح بشه چون شرط حدیث صحيح بود متصل بشه ثقه بودن راوی عادل بودن راوی متصل بودنش عیب و علت نداشتن و شاذ نبودن هم عیب و علت داره بهم انك هم انك المتثلين خب ایک مسألة دي كا هان هان بحث انقطاع روزبير حديث قاهم يارا درست ایک حديث مرسل تتابعي بيض غير رسول الله قفت حد تنك قفت فقهاء قابول الشرح دع نزل فقه لیکن لكن آياء ص صحي م مين ف ففقصف ق ق ق ҷумҳур муҳадисин ба инам ки чи ки марсил мурасил қабул қабул нистанд ва сахих нистанд агар сахих буд ҳеҷ вақт имам маввода китоби марасил надошт ҳеҷ вақт имам фалон китоби марасил надошт ҳамон ҳадиси марасилро ҷузви китоби сунан исроро мекунад чиро қарор надод чун ҷуз бе шарти ҳадиси муттасил нест шарти ҳаволи сунан нест як шарт خب ادامه بحثمون بحث مرسل ما این گفتیم که یک مرسل نمیتونه صحیح باشه اولا به خاطر عدم اتصال اسناد دو گمان به خاطر اینکه ضعیفه اصل بر که مرسل ضعیفه اصل بر نیست که مرسل صحیحه بر خلاف ابو حنیفه گفت وقتی که ضعیف باشه بالفرد ما قول نكون انك مثلا زئيب بطرقش بدرجه حسن ميرث لكن يك حسن لغيرية لا يوجد بدرجه, بدرجة, بدرجة حديث صحيح لغيرية لاحظة صحيح لذاته برس يك زئيب بدرجه حسن ميرث ولي بدرجه صحيح نميرث يكما سأل لك هاد ما قولهم اين كه مثلا كيف يحدث كفتين مرسر را مطلقا قبول دارم مادم میگه اصناد صحیح باشه تا اون تابعی بعدی دیگر مثل مثل امام شافعی نظرشون بر اینه که مراسید کبار تابعی یک تابعی بزرگ باشه میگه میشه پذیروب باشه اصناد تا اون تابعی صحیح باشه نمیدونم با احالیت دیگر تعییب بشه یعنی متابع یا شاهد داشته باشه یا با فعل صحابه یا با فعل صحابه یا با موقوف یا با یک مرسل یا با یعنی یک مرسل یک مرسل یک قوسن کبارتاب بریم منجبره هرچن که اصل در نظر ممشافه اینکه مثلا نیه که مرسیل سعید بنوی سیل صحیحترین مرسیل هست بکن بحث صحیحترین سازمش نیست که مرسل سعید بنوی سیل صحیحت هرچن که بعد بین ها به این سلال عذب شافیه گفتن که بله، در نظر ما شافیه مرتب سعید النومسایی صحیح. امام شافیه بیگه که صحیح ترینه، حلت صحیح تر بودنش اینه که بیگه که من چون بررسی کردم، چون من رفتم دنبالش دیدم که مراسیل سعید النومسایی همش مرسولند. هیچ واسطه ای بینه، هیچ واسطه ای از تابعی بهش و بین رسولانیست. بلکه اون کسانی که هستن صحابه هستن. دا راتيجي مرسي فا... سيد سا... المسيح دا دمنا دحيحه نبته مطلق قالوا مراتي دي كه خودش ميگه ك كاست داره و ديده كه متصل اومده ديك علما بحث ديگر هر خط در مثل من المسيح ضعف حديث من قبل الله طه وإن كان مذفوركا من الطاطفة وهم الحديث والطرح ويجلد في المراتب موضوعا نقول بيك فإن كان في الرواب ضعيف إلى من ابن المسيح اقر سيد ابن المسيح عالمات صفحات امامات اقر رابياني باشن كدار زمن ان اثنات زمن بين امام وبين سيد ابن المسيح رابيه زعيفي حديث زجي زعيف الاثنات زعیف و اثنات بخاطر, بخاطر اون اون شخصی که بین ما و تایدونه اگر مطروف باشه، خب روگت مطروف اگر ساقت باشه، رواج زعیف شده اگر راوی کذاب و دروگو باشه، میشه چی موضوع هر, اون هر رتبه ای که راوی به خودش میگیره، رتبه حدیثم همون میشه راوي الضاع حديث مشمول به راوي مجهول حديث مشمول همي طور تابعين نعم انا قاعد استاذ تابعين متوسط الطبقه خب طبقه متوسط التابعيين میگه اگر اسمش صحیح باشه تا اون تابع مثل مجاهد و ابراهیم نقعی و شعبی میگم من مساله خوبی ده قبولش دارن. لیکن این خوبی تا کی چطور واسه اینکه ما داریم میگیم منقطع مشخص نیست اون راوی که نقل کرده از برمون این اون تابعی اومده داشتش نقل کرده معلوم نیست که صحابی هست یا تابعی با اون تابعی احتمال داره ضعیف باشه یا سخه باشه وا چطور تو ما میدونی مدش بپذیری ما نمیتونیم به پدیریم. آلا چه متوسط باشه چه کبار اتابعی باشه. برای ما فرقی ندر. پس ما نمیتونیم به هر هرچند که اینجا بیگه فهوه مرسن اونجهی را برسن به. مرسن خوبیه. بعدم نیست. بعدم نیست. برسن به مرسن فقه ها. و من هوه المرافیل. و من هوه المرافیل عنو ويوجد من ذلك مرسيل الظهري وقتاله وحميد القبيل من صغال الظهري بل، نعم، فقط لك من المرسيل الزيب قابلت هذا الميس من رسيل صغال الظهري وصول الظهري حسن المحققين يعزون مرسيل هؤلاء معظلات ومتقعات فإن ظالب المالات هؤلاء عن طابعين حبيل وعن صحابين анتقلیک. من تهی انه اسقه اتصال 2. خب، دیکه اغلب محققین مرسل وجوز مرذل اونقطع میکنن. چرا؟ چون خیلی از این روایت تابعین از تابعای بزرگتر یا اصحابی به خاطر همین یوان بردینه که در اسنادش یک یا دو راوی سقط شده. یعنی اگر صغار تابعی اگر از داشت مثل دوهری بخواید بیاد نقل بکنه با چند دردت ها مناقض کرده دو تا یا سه تا دو تا یا سه تا مثل اون صحابی که ما داشتیم که در بحث تارک و صلاح لگایتون هن که اون تابعی که از صغار تابعی که می که صحابه اجماع داشتن بر این که تارک و صلاح کافره ما گفتیم که اون اون طابعین با چند تا در صحاب مناقض کرده پنج تا لیکن حق صحبت صحابی رو داره طابعی هست که صغار طابعین هست بخاطر همین گفتن اجمع قابل قبول نیم اینجا هم همیتور صغار طابعین با دو تا سه تا صحابی مناقض کرده اگر بخواد از یکی مثل عمر رو نفو بکنه که حسن به دنیا نایمازه مثل زهری که سال ست و سی و فولی فوت در اون موقع تا امر به شهادت رسید اطلا موقع نبوده خب پس لازمش اینی که فاسده این بین خودش و بین عمر بن خطاب چند نفر باشد؟ دونه خب اگر ما بدینیم اون روایت هست روایات عمر بن خطابه میشه روایت معزل معزل چه روایتیه روایتی که دو تا راوی پیدر بید از اصلاح بشن دو تا راوی پیدر بید که صحابی و کبار طابعین حل شده و بعضی هم گفتن منقطعه چون کبار طابعین حل شده صحابی مطرح نید ولی مهم اینه که شما بدونید حالا چه صغار طابعی باشه چه صغار طابعی باشه ما نمیتونیم بفردیدیم رسولا میگه تسمعونه و یسمعونه و من یسمعونه و یسمعونه و یسمعونه تا آخر حدیث سمع میشنوید از شما هم خواهند چنین شنیدند حالا چه با مکاتبات باشه چه با نمیدونم مداولت باشه حالا میاد تداول چیه مکاتبات چیه و کتابات چیه همه اینا خواهد باشه اجازه شه خواهد باشه که حکم انتشار بده دیگه بهتر اینه که یک شخص ارتباط داشته و کسی از اون حدیث میگیره وقتی که این ارتباط نباشه شخص ملاقات نکرده ما نمیتونیم بپذیریم شاید مثلا از یک نفر شنیده اون شب مثلا ادب خوبی نیست درست نیست بخاطر هنی ما نمیتونه مفیده امام ابن نحن امام ابن نحن مطلقا مرسل را رد می کنه میگه اصلا مرسل قابل قبولی متعدمانه محصص اتصاب شیخ سلیم حالا حسن که از طلبهای شیخ خالبانی و از های بزرگ شیخ خالبانی لیکن برخلاف شیخ خالبانی و علام ابن حجر و دیگر علماء علماء علم حدیث ابن ملاقه و امردده و غیر علماء مطلقاً حدیث مرتلا در درسته مطلقاً و تحسین نمیشه من امروز فقط نشستم روی سلسله صحیحه چا پیش از 40 50 تا رو باید در کشی که تحتینش کرده و اونم به خاطر چی به خاطر اینکه مرتلا با طریق دیگری پیداله مثل چه حدیثی مثل حدیثی از دی سلیط الذي <سلمة> دوخ <سلمة> <سلمة> <سلمة> پیش اولوری تحقیق است وجود کسی از تابعی تابعه می میگه رسول خدا فرما ده صلی الله, صل الله علیه و سلام لیکن محقق کتاب بر منزله کی رفت بر منزله ابن حث کی که مرسل منقطع و منقطع قابل تحسین نیست هر چن که از شان طریق مروچه گفته جمهور محدثین ولی اینه که اگر مرسل مادامی که اصلا داشت صحیح از طریق دیگری غیر از اون تابعه بیاد قابل تحسینه یا با مرفوع دیگری که ضعف درشه ضعف یسیر سیول حفظ نمیدونم یه بهم کمی داره صدوق یخط اگر این یاج مجهوله اگر این ضعف های یسیر درش باشه و یک تاریخی دیگه منسل باشه اون حدیث درجه چی؟ درجه در حسن میرد درجه حسن لغیرهی میرد هر دوتا ضعیف هم درجه حسن لغیرهی میرد پس تقویف میشه سطويه است بر خلاف گفته ابن حزم ما دليل مدركمون بر تحتين گنا چيه چي بود سرودي قلنا فلا يكون رجلين فرجل و امراه من من ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل يكي ازاكبره بشاخص مشكبره ميس واقعو درست نگيت فتذكر احداهما الاخرى تذکر بده بهش بگه ناقصت عقل ودینه ناقصه عقلش ناقصه ضعیفش زعف درشت لیک یعنی یکی دین رو سایید بکنه تقریت نیشه نمیشه؟ تقریت نمیشه و صحیح هم هم اینه که مرسل مرسل و همچنین اگر منقطع باشه بلی در طبقی بالا در طبقی طابعی یعنی طابقی صغار صغیر و مثل طبقی طبقی, طبقی, طبقی, طبقی باشه کچک باشه بیاد از بزرگ نقلو کنه لی اونجا تا با هم ملاقات نکرده باشن دیا در وسطشون یک مجهول باشه اینو حاض ای هم باز تقویت میشه اسب میشه یعنی اون هم در طبقه بالا اصل میشه ااصل به طبقه پایین مثلا در طبقه پایین طابع تابعتاب این تابطب با دیگه در طبق آنها ها و قائن و فتابین و در جاین و فنان وفران زیالن به خاطر همین ما نمیتونیم بپدیم و اسب این و اینه که یف جدان ضعف جدانش و به درجه حسنا مندرست یک از مسائلی که هست بحث مشترک هستنا نمیدونم در موقع بحث داشته باشیم من راویله صحابه فقط راویله صحابه یک صحابی لس الله بن عمرو مثلا نفسه صغار صحابه هم درسته در جنگ بر که نبودن در جنگ وحود هم که نبودن بیاد بمید که رسول الله در موز وحود چنین فرمودن یا در جنگ بر چنین گفتن این مرسل قابل قبوله چطور میگید قابل قبوله به اون صحابی احتمال داره که از طابعی دیگر یا میشنیده باشه من طابعی هم بازم احتمال داره زعیف باشه و زعیف نباشت ما لا ستقبله تاريخه مشهور بي صحيح صحابيه عندهم دروس يمكن احتمال اشاهه كتابعيه همشيده باسط لكن امام بحدات سنين بيجي وقت تتبعت روايات الصحابه رضي الله عنه عن التابعين وليست فيهم الروايه الصحابيه عن تابعيا ضعيف في الاحكام شيء وليثوت مش مطلق الصحابه كبخان در احکام این چیز از طابعی نحروب کنن نیست فهاد یزول لعن لعن على ندور اخرهم عمن عم یضعفن طابعی والله اعلام میگو اینم را غیر از این که خکلی نادر و غیر ممکنم شاید باشه شاید یک دون اتحاوی پیدا نکنید که بلپذرد ازد جاید جاید طابعی اگر ا اگر ا اگر ا اگر اگر جهر ممکنه که صحابه بیاد از یک کابی زیب نگروبه نیست اگر باشه هم یکی و تا اونم هم شاید در تی اثنان مجاهیل و ضعفایی هم باشه پس اصل بر اینکه چی مراسل صحابه حضی رفته شده و قابل قبوله خب دنباله بحث حدنام اسنادی اسناد استعال خب مرزل چی است حدیثی که در ته اسناد دو تا راوی پیدا سه پی حد باشه دو تا راوی پیدا ببین پشت در پی. همان خب اگر یک اسنادی کوئی پیدا پیدا نبود سه جاونی چه بشه میان سه جا اول اسناد مثلا اسناد آخر اسناد سه جا فاصله باشه چه بشه میان منقطع بهش میگن منقطه این هم تحریف موضل خیلیم خیلی تحریف راحتیه هر چند کلا در بحث اعذان اشطلاق لغویش میشه که مثلا از خجا اومده از عزیله یه چیزی که بسته شده و یه چیزی يا شيء معزه اللي شيء زیاد مشکل داره مشکل زیاد يعني اي از معضلات جامعه مشكله زياده يعني شيء كرس خیلی مشکل داره يعني دیگه فکری به خالص نه نقطه ربی دیگه از عادت نات حش دقیقا با طرش خوندن ديگه به درد نمیخوره خب منقدر. خب منقطع انقطاع فقط این گفته رو بنید بکن قبل از این که بحث شروع بشه در گفته اموم دارابطی و همچنین اموم شافعی به مقتور منقطع گفته بشه در بحث مقتوع انقهاد اومد باو برحاد یعنی یک گفته تابعی تابعی فران گفته بگه بهش میگم منقطع این فقط سواجه رو بکنید چون یکی رو باییتی میبینی ترده بعد بگید امام شافی گفتی منقتر یعنی منقتر منذر چیزیه هست فقط دقیقت باید بکنی هر عالی میشه در بعضی از مسائل یک اصطلاح خاص خودش داشته باشه بله جمهور محدثین غیر این دو نفر منقترش قد شده باشه لیکن بعدی هم حد تنگشی اصطلاح خاص خودشون دارم خب چطور ما میتونیم تشخیص بدیم که امثتا در اسناد واقع شده اولین راه های شناخت امثتا شناخت تاریخ شناخت تاریخ بلفرد امام ابو حنیبه سال سد و چنون کرده امام شافعی که سال سال پنجوه به دنی آمده بیاد از شافعی نقص بکنه. شما یک حدیثی را بگیدید برپن، امام شافعی بگرد به حدیثی گفته که تا آخر ازدان. به خود را چی میگید؟ خود به خود را بگید که این حدیث؟ مقترد. خود به خود به خود را بگیدید مقترد. ببا تاریخ بایم حالا تاریخ تاریخ مختلف مختلفتر. یک اینکه شما الان، بحث تولد باشه درش این, این وقت تولدات شده این, این وقت تولدات شده یا مثلا بکنه عمرش ده سال تودی هفت سال بوده پنگ سال توریه. یک وسیله دیگری که از تاریخ میشه مشخص کرد که این سلطا حاصل شده از بحث تاریخی مثلا بر فرصه که من در سال 150 رفتم شام از سلان عارف گرفتم و اون عارف در جای دیگه میگه که من سال 150 تا سال 160 خلاذا کجا بوده مثلاً پس این داره درو میگه چون اون عالم نبوده در اونجا اصلا یا به طرز که مثلا به فرض همه بحث ما بحث تاریخ لا وقت تنها در نظر نگیرید چون مثال داره غیر از وقتش ببرن یک از وضعای مثلا عرا اصلا اعتراف کعبه و و به کعبه رو به چش ندیده و مدینه رو به چش ندیده یه که امام مالک گفتند که فنان نافع عمر عبدالله عبدالله عبدالله الله که چی نیفرمیدن به خود را چی میگی؟ از درات تاریخی اعتراف این شمع دوشمان ثابته که میگه ازم من مکه و مدینه به چیت نگیدم؟ نه حجل افرم نه عمره نه حجل افرم عمره و مدینه به چیت نگیدم و مالکم نه قلوشتن؟ نه پاس از مدینه بیرون گذاشتن؟ نه گذاشتن این شمع ки қазо дод доругӣ дувам аз раҳҳои шиноси инқитоъ яке аз ашхоби фан ба исмоми бухори, баъд Али ибн манни, яҳё ибн маъин бигӣ индон нафар бо ҳам мулоқот накарданд ва ҳатто нашудиданд яъне ки ин масаи риояти мутталиқ خیلی ها به یک هم به جسد ازش استقاده می کنند مثل خود امان بخاری مثلا یک رو هاید موقعه بگیرش بگیر مرسل این هم به تو تذکر بدن خیلی از متقدمی به حادث موقعه مرسل هم میگه خود سن امان به هرکی هم شاید جوهایی لمس کشن نلا هرچند که درش اشکال هستی که نلا در جای خودش به خودش اشاره میشه شه پس صاحب یک فنی حنزيز وزكب وزكب. بالفعل. ما الآن يكون هناك الضريب؟ هذا مدى الممالك. يقول الإمام المالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سأخر حج. ما يريدون أن تكون هناك روايات مستثرة ومنقطعة. هل تكون هناك روايات الممالك؟ هل يمكن أن تكون هناك روايات الممالك؟ سنه ابو داوود سنه ابن دا ماجه یک کتابه 9 شما چیکار می‌کنید دوغونید می‌خوای این تشخیص بدید می‌خوای بدونید که آیا مالک از نافع نشیده چیکار باید بکنید شما می‌خواید بدونید نافع از مالک شنیده یا نه مالک از نافع شنیده یا نه چیکار باید بگه بگید خطا تاریخ با چه کتاب با بروری هردیم؟ چه کتاب رجالی؟ گفتی تحصیلت ما حالا این امامی زکب بوده چه امامی میتونه زکب بوده؟ مثل امام ذهبی بله میتونه امام زهب باشه لیکن یه چیزی که اه... دست رست باشه و با برجه باشه تحریب الکمال امام هم همچنین تاریخ سمشق نعساکر دو تا کتاب خیلی مهم در سنافذ تلامید و شیور شما بالفرد گیر کردی در یک رایی یک رایی گیر کردی آیا الان مالک از نافع شیدی یا نه خب دو تا را حل بره میری نافع مولا عبدالله ابن عمر تلامیدش ورا وعنه فلان ميقول ورا وعنه مالك فلان وفلان ميقول كي اين الشخص هذي روايات كادنه بطل هم يجب فس دلت مطمئن شد كي اين شخص هذي شخص هذي خب ايا اله برقشتك بنافع نديده چكار باز مخلیده باید باید باید بلی ترمية مالك منعنا آیا از شوخش از شوخش نافع بوده او نبوده از شوخش نافع بوده یا نبوده، اگر نبود شد منطقه، اگر بود شد منطقه، پس تحصیص یک امامه، بررسی کرده، استرسا کرده و دیگه چیز بات تنبوه دیده که این اشخاص طلبه شن و این اشخاص شیوخشن، مشخص میشه، در حضیبه که ما بر بگرده این هم اینها مشخص میشه کی با کی مرافض کرده و کی با کی مرافض نکرده می را حه اینکه توور به حزی رو کنار همم بزار مثل یک روای می بینید که مثلا اما قبي یک حجر مالک حة اما حنا نامقط آخرش یک روایت دیگری یک شخصی پیاد بگیر حدثنا قعبی بگیر حدثنا نفع عن عبدالله بن عمر این رسول حدثنا هفتش طریق داریم در خود موضوع مولک هم داریم یا حدث اون در اونجا داریم و غیر از این رابیانی که هستن این حدث را همه متصل نفت کردن همه متصل نفت کردن یعنی با اثبات یک رابی یکی دیگه بیاد اون راوی را حذب بکنه خانه ای بیاد بکنه حذب ناقر مالک را حذب کنه چی میشه یه روایت روایت میشه منقطع چون اصل شه اینجا مخالفته مخالفت یک راوی با روایت دیگه بشه شاد غیر از شاد منقطع هم حذنوره شده شده شده بزاعت یک راوی رو حذب کرده در سی اسلام دو مالاش مپنیم و أجول ذلك ما قال فيه مالك فلذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وكذلك فإن مالك فإن مالك, مالك المتسببين فالعادة بالآلات هي أقوى من المناصر, من المناصر مثل حميج وفاقنا بحثة أجبل ميكونامين إمام مالك ميكو إمام ذهبك نبليا ميكونام جزء باسترين أسناتها بمعزلات بحثة معزلة دروسة وقت منقطعه منقطع موضع در پیه هم اومده امام مالک کمترین واسطه بین امام شرطا چند نفره کمترین واسطه بین امام مالک و رسطا دو نفر نافع بعد دو نفره میکره بهتری بهتری منقطعات حالا چون هر معذر منقطع هست هر, هر معذر نیست میشه کفت منقطع به معذرم میشه کفت منقطع خب میگه بهترین آنین منقطعات در بحث منقطع امده این که مالک بیاد بیده که از رسول الله به این چینین رسیده که رسول الله چینین فرمودند که زیاده بلاغات در محته امام مالک میگه چون امام مالک شخص متثبتیه شخصی هست که نگاه راویان میکنه که در راویان از ضعفا نقله میکنه شاید بلاغیاتش گفتش که رسول الله چینین گفته از مراسی رحمه ایت و قصاده هم قبی کرد باشه لیکن این گفته قابل قبول نیست قابل قبول نیست ما تا رجال نه که ما مالک باشه زهری هم باشه شیخش زهری هم باشه ما نمیتون قبول بکن برهان باید ورده باشی هر دیگه زنی باید مندره که تو بیاره درسته که فاسق اگر گفته بشه لیکن عادل هم این حبری نقوم بکنه باید تثبت بکنی که ناقل کی از کی شینی یک حکمی رو میخواه اثبات بکنی باید واسطه تا مشخص بکنی از کی بس برای ما فرقی نداره چه ممالک باشه چه ما هر چند که اصل بر اینه که بلاغیات ممالک مرسل هم هست اصل بر اینه الا یکی یا دوتا نادره خیلی کمه که یک مرسلی باشه یک بلاغیاتی باشه که احس نداشته باشه احس با اینه که احس لیکن خوبی مرسل مرسل قصاده و احبابی اینه که با تعداد تو رو به درجه حسن میرسه لیکن مو... لیکن بلاغیات که ما مالک بگه رسول الله گفتند آبین تحسین هست خیر بگیش دارید پس گفته امام زهبی که اثانید بلاغی ها در نظر امام مالک بهترند از مراسیل قصاده و غیره قبل قبولی مراسیل بهترند با خاطر این که مرسل به درجه حسن میگه. اما یک سؤالی که اینجا میاد مرسل خسی چرا بایدیه؟ مرسل خفی الان در ظلن بحث تدلیس هم قهد اومد، لیکن الان فقط کشاره بکنم چون در ظلن مرسله، این مرسله خفی را هم بیدن. خفی اینه که یک شخصی با شیخی ملاقات بکنه لیکن از از روایتی نداشته باشه. یک شخصی با شیخی ملاقات بکنه ولی از از روایتی نداشته باشه. این بهش می کنم مرسله خفی. یک ماشی دیگه هم هست غیر از این مرسلاتی که بعضی از علما پای آن بحث زیاد یک اسنادی شخص مبهمی درش امام مالک حدثنی رجل او حدثني رجل من اهل المدينة عن عبد الله بن عمر انه قال كذا و کذا دیگر رجل مشخص مبهم اجا ده تبعیت باشه أثنان توبيعي بي حدثني رجل من الأنصار أكبر أني كتابيها مستقفة إماما صحابي رجل ونقصبا هذا سعيد لنا سيئة مثل حديثة السفارية قفتني اللهم اللهم اغفر لي وسب علي أني كتابه الغفور ثابت بعد فهر نمو توبيعي بي حدثني رجل من الأنصار حدثني رجل من الأنصار شو انصحابيها معذولا ва рави аз ин сахави як шахси савии маруф дар натиҷа ин иснад саҳиҳа ва خاطرҳами андӯ албони ин ҳадис гуфтанд оср ва аллоҳуммағфирли ва туба али инка таубул гафура тасҳих мекунад бале қатин накунед бо каффоре маҷлиси қатин накунед бо истиғфори дар маҷлиси ҳадисату ҳадисанати اِنَّكْ بَاِنْتَ تَبْوَبُ الْغَفُورِ رَبَّ اغْثَرْ لِمُ خب یک شخص از شما شاید بگیم خدا چه فرق کرد؟ بگیم انا رب اغثر یا بگیم اللهم اغفر لیم فرقی دار به هم بله اگه فرق دارد، چرا فرق دارد؟ چون اصل در اینکه چی اذکارت و قیفیه؟ نمیتون یک لازمش کم بکنی یا زیاد بکنی اون صحابی که امد گفت یا رسول الله این دعا به، دعا аро он чизе ки баҳр гуфтам чи буд ду фа аллоҳом ма када ва када гуф ки на ман гуфтам зехрат ва ла зарра чаро расула ислоҳид кар чун алфаз зеки не кас адолат алфаз зек суфис пас бадл ба мо сарвар шуд ин ҳоло ҳадис بعد از نماز صد بار گفتن اللهم صل علی تطه با نبی که ذوالغفور که شخص از هزار میگه که شریران رسول بعد از هر نماز بعد از هر نماز میگه صد بار بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه نیاز است طرفیام استرم 70 مره درود میات 100 مره بشصاد بار یا صد بار استقبال میکردن حالا در مجلسی در بعد از نمازید انسان همیشه بودامد باشه از همون وقتی که سلام میده سلام علیکم سلام علیه و رحمه الله وقتی که میگه صفالله دیگه احسان اقرار بکنه این نمازشو تو بخونده یک نفر نماز بکنه یک فنجم داره یک نفر نماز میکنه یک ششم یک دهم ده همولاد میرده همین کنه یک پنجم شروع کرده سلام از نصفش یک شخص نماز بکنه نصف نمازشو داره پس اگر قرار باشه در اون دورانی که او بکر آمر بودن نصف باشه دیگه ف دیگه باید همون وقت سلام میدیم دیگه استخبارمون میگو کنیم من اونجا ترجمان بیشنیم صدوار استخبارمون اللهم اتفاق بیم بازم بگیم و این همین نمیتونیم چطور جلو به خدا بگیم خب پس اگر مبهم باشه در غیر طبخی صحابه مبهم باشه بعد سلمان مبهم مثلا بگیم حده نیراجب مبهم هم جز چیه؟ جزه, جزه منقدر در نظر بعد سلمان Inahini da at the verse of the words, subhanatallahu hamdum, subhanatallahu hamdum, subhanatallahu hamdum,